بسم الله الرحمن الحمد لله رب الله در محصه عموم ایکی از این که از قدیم هم محصه شده محصه قول استثناء به جمعه متعاطقه است و انشکه این مثل خیلی از این محصه استثهاری اسم داشتیم مبارس حجت معنی استثحار. چون از کرد این حجت به معنی استیکم که یک جمع خود جهت استیاء خود جهت می‌کنه. می‌گه دزد است. از مسائل خود جهت است. از هر مراقب زوج. این مسئله جز مسائل خود جهت من ادومنه که استدھار میشه. معنا و انسوبی این که این مکلمش در قرآن وجود داره. یکی از مواحظید که خیلی قدیم مطرح شده هم در فقه مطرح شده اینه اساساً عبرن در فقه مطرح شده و آثار فقهی داره و بعد هم در اصول اصول اصول هم به عنوان امتظای امره کلی توی مباحث اصول اون رو آورده، اما به فقهش همین های معروف و درگی نیمون المؤمنات، المنسان به حسب مشروع سه سا گفتی در اونجا آمده فجل رو بلات هم سمانین جلد بلا تنظر درمون شهادتن اولن و اوزارکه همون فاسبون الا لبین تابو چی؟ لبین به خصوص اخیر نکره که اولارکه همون یا به کل کلام نکره البته ظاهرن علمای احتسانت اتفاق دارن شاد از عبارات ما هم بشینه اجمالا این رو فهمیدم اما تصریحی ندارن در این چند مخصاب بودن رو علماء اهلسانت اتفاق دارنشون حکم اولشون حق و ناسه یعنی حد برداشته نمیشون در اون دوتا حکم راجع به فیلس هم اولای که آنفاس اول متفاق برداشته میشه اگه توبه کرد دیگه حکم میخستشی میشه محل اختلاف لرفه و بلا تقبل به هم شاهده دن اولا این محل اختلاف این بحث دوی آمده ولی لا من درد که جمله از مبارس و اصول رو اگر میخواییم به اصلاح در کلمات قرم اول و دو یعنی در کلمات فقه ها در بیاریم خیلی هاش تو فروع فقی یعنی اون فرق فقی اضافه ولی که فرعه هست نادر به این مسئله قصوری هم هست مثلا همون اختلاف انفرسان نده احتلاق میگه شهادتش قبول نمیشه ولی توبه کسی که پرسی کرده ولی توبه رو کنید خواه آخر و عم شهادتش قبول و اولای ناس و هده ناس همه خوب بشه دیگه شهادتش قبول نمیشه ولی نام رو لهم شهادت گرفته و این ممنونی که استثنابه اون نفرده اولاره که مرفاسه اون الا لبینه تا اون توبه رو فقط به خصوص فزده لیکن از شافعی نرمی شده یاده زیادی و روایات ما نرمی شده به که اگر توبه توبه کرد و غرفه هم رو سلاح هم اون وقت شهادتش خوب کرد مسئله تو که رو هسته شد تأثیب هم داره و باوره هم مسئله مهمیه که که خانمی رو یا بی مردی رو قرض کرد به عمل حرام حالا یا زنا یا لواد تسته جی رو بلا تبریه اون تصور توبشه. توبه هم که بکنه آدم خوبی هم که بشه باقره شهادهش قبول نیست مثل این تصور دوم شهادهش قبول میشه بعد سور و قبول میشه پس این اثر فرقی بود بحث اصولیش هم این بود که آیا استثناء الا لبینه تا بر نمیاد به خصوص جمله اخیر یا به کل کناوها در این مورد به خصوص گفتن به اولی بر نمیگرده. صحیح قبول نیست. اول که درست تو قبول بله این را از علما ما هم گفتن اولا ما اندازه وقتی توبه رفتی اومد اش شهو برداشت خب قبول شواز هم میشه دیگه شما فی فاصله نبود شواز قبول میشه اینم گفتوش حالا این بحثای به اصطلاح بیشتر جنبه فقهی داره پس در این مساله امامت و طمعن ما الان تو جنبه فقهی وارد نمیشه چون طولانیه طبیعیه بحث ادیش و اما جنبه اصولییش این بخشه که آیا این استثناء به همه برمی‌گرده حالا در اینجا مراد از همه دوتا در اینهایه چون دایه اجماع کردن دایه اتفاق کردن به اولی بر میگردن حد جایی میشه. یعنی به امارات اخرام تو بحث دوزی هم آمده توبه تو سرگر از سارق و از سارغر. در اونجا هم توبه آمده لیکن گفتن حد برداشته میشه اینجا گفتن شونه این حد هشتاد تازیانه این حق و حق الله نیست زیرا با توبه حق الناس بازنش نمیشه با توبه حق الله بازنش میشه مثل سرقت دستوریان در قدا با توبه بازنش میشه اما حد قذف بازنش نمیشه خب این طرح مسئله از خیر پس معلوم شد به خاطر وجود آیه مبارکه در قرآن این مسئله ثابته داره این توضیح رو مسئله جدیدی نیست البته در ورز از روات هم جاری. که دو جمله آمده بعد و زمان اون شد از همون اول هم دو قول رئیسی در مطلب مطرح بود بیشتر که به خصوص جمله اخیر برمیگرده. یکی اینکه به کل ها برمیگرده. این هم تقریبا دو قول. تدریجا در میان علمای اصولی چه شیعه چه سنی شروع شد تفصیلات دیگه هم داده شدند. مثلا بین که این استثناء در یک کلام باشه یا در دو کلام باشه مثلا اگر گفت که ارکت فلغلم و شعر و ولو قطب بعد از مدتی گفت ولا داره که فلکستار ممنون یک کلام ولا یکون الکرام فلکستار ممنون که الان بیم اکرام بخشیدی میخود یا به همه میخود دیگه تدریجا شروع شد تفاصیلی از این جهت داده شده مثلا همین تفصیلی که مرمون استاد دادن که یا به در موضوع یکی یا دو ساس متعدده محمول یکی یا متعدده و یعنی موضوع تاره این واحد اخران محمول واحد اخر سالستان هر دو متعددن در موضوع که واحد باشن خیلی با بردل استثنه ها ایشون خواهرن به همه برمیگرده خوندین بباسه مرمون قصد برموه ناینی هم همین پرده به این تعداد و دست تقریبا نه این تقریبیش هم بیایی تقریبی دیگه و حضور دیگری دیگر که در اینجا گذاشته شده که این رو خوندیم نیدیم مقدارشم امروز سام توجه میده از کردم قبل از اینکه ورود در این مسئله بشه خوب دقیقه بخواه دیگه توسه خودش کده اولون کار که مقدمه هست ولی بعد از این مسئله بیده ک ما عملا توی شعر نداریم من میانه سلنه. من اون وقتا میان خطبند و سخنران فقط به خاطر آشتیه با تاریخ مساله خدمتتون عرض کنم. در میان خطبند و سخنران غیر از این تفصیلاتی رو که یک ایده شما ارث کردیم بیان شد یک توضیحات دیگری و تفصیلات دیگری هم دادن یعنی وارد مباحث دیگری هم شدن اصلا که در این کتاب شده یکمه مقداری برد تفاصیل بیشتران برای ما به هم کتاب اختفار میکنیم البحر مال زرکشی جلد دوم صفحه این چافی که دارم میگونه صفحه چارسد چون از این صفحه چارسد وارد وارده شده و توضیحاتی رو داده بله تا صفحه چارسد در حرفه ایشان را به این مقصد توضیحات رو بده. اصلا ایشان متعرض اقوال شده که در بحث سالس و در جلسه سابق ما اینو البته من مختصر می‌خوام تمام این حرفا طولانی و جای بحث نداره. 6 تا پول ایشان بله. در اینجا آورده و توضیحاتی رو که برای کلمات حضرات داده خیلی همچین واضح علمی نیست این صاحب مثلا خوندیم دیروز، به در همون بخش گذشته از شافی شافی بار داده به همه برمیگرده ابو حنیف به خصوص اخیر برمیگرده از شافی نه بوده که اگر انسان پنشیش جمعه بیاره که شکه الله این انشالله به همه برمیگرده پس اگر هم بود به همون برشان این صافا خب این این نحوه استدلال ها در اینجا دارن صحبت های متعدد با توجه به مسئله بشه ارز کنم زرف و سه ارز دیده میشه اون ایشان به جای به استدلال تخاصی در صفحه 453 به بعد به این عنوان وعلم امن القول به عوضی الالجمیه اندنا شروع تر اگر بناس که این استثناء و همه برگرده چند شرط داره این رو چون در این مزاده که من دیدم در بین ماهان نیامده ایم هر که اونها دیدن شرط اول اینکه جمل جمعه متعاطف باشه یعنی اگر عکس نباریم این که اکرم شعران جالس العدوان اضف العلماء بدون حرف واقع میگه باید عطف باشه عطفی نباشه همه به همه بر نمیگرده فقط یک خصف اخیرشون ارتباطی برین جملته نیست چون ارتباطی نیست واضی نیست لذا نکته نده بعد اسم ای اده رو برده این در اده از کتب اصول در اگه این متعارف و اصول ما هم هست مثلا فلان حرف مثلا یه کی رفت زده فلان فلان اصلا با اسم بردن مسئله اثبات می شود حتی ده نفر اسم برده که اینا قائل شدن به این این شرط باید باشه بعدش هم اگر کسی هم شرط نکرده مرادش هم این شرطه ولی بعدی صحبت راجع به این مطلب داره که این درست هست انصافه بعد عرض نکنیم این مدرش باید به یک دهورات ارفیه ارفیه قانونی برگیرده که بعد بر توضیح شد شرط دوم ایشون نهار کردن این است که عرض با غاب باشه در کلمات از حال ما نهاره لگاه برای اینکه که بدونیم چی کار شد. چرا؟ چون اینا گفتن که اگر عرض به غاب نباشه مثلا دفاع باشه عرض نمیده مولمان ثم ماك من نحق ثم عبرت عبره این میوارید ا علما چون به شما آورده این جدا می کنم. چون برای ترافی پس واذن به واو اگر تن به واو و سومه و, سومه و این غروف دیگه نباشه بله اون وقت باز یک بحثی هم مثل همیشه چون کتاب اصول شده کی نرفو گفته کی نرفو نلخته چی مطلق برده چی این حرفا که بیالا خودتون آه این بعد دیگه بله این راجع به واغ و فا باز یک ادهه بعدها از این مطلب تعدیه کردن بقیه حروف اف مثلا و اما بقیه تو حروف الاس فلایت اتافی زاله لنه بل مثلا اکمال علمان بل مثلا اکمال علمان بل مثلا ال... این بند آمد منشه میشه که اون الله فقط به اخیلی بکنه و ام لبن ولا ولا که او ام اما دیگه اینا رو شروع کردیه که این حروف رو آوردن که وجود این حروف منشه تغییر میشه اگر حق به واق باشه یک جوره، به بل باشه به او باشه اکم العلماء او کذا این جور دیگه میشه این هم یه خیلی دوباری که این خیلی کلا در کلمات اصحابه همون رو مغالقی آیدنانی اصلا نیامد. این بحث که اصلا متعرض نشده لذام هم برای روشنایی مطلب تعرض پیدایم شرط سوم انلایت خلال جملت این طویل. کلام طویل اگر یک کلام طویلی در وسط آمد اون هم باز منشه میشه فقط در اخیری بکنه. مثلا ای این که اکتمل علمان این علمان مثلا رسول انبیاء و خلاه که در شان علمان صحبه کردن بعد گفت وعضت القرآن اونایی که پاری قرآن هستن مهمانشون بکنون این این لفستاقی به علمان بکنه چون با اون فصلی که شد مانع این که به علمان بخوره به خصوص اون اخیری میکنه. بعد بعد حالا مثال هایی هم زده خودش کاری اینه از الراوه ان تكون الجمل جمل منقطع تر ایشون تعبیر اینه که این جمل منقطع باشه این تعبیر جمل منقطع بودن رو تفصیل کرده ببینید که مثلا مثالی که زده اینطور اضر بالاسات و الجناز و الثقات و البغاد الا منطا این موردی که ایشون گفتن معلوم است هم داره مجهولی هم داره لیکن نابغه الله جمل متواصف باشه منقفه باشی و متصف بانوانی که حکم یکی باشه و متعذر در اینجا حکم یکیه چون به ادره بزن اتاعت و جنات و جانی ها و تاقی ها و باقی ها تو تایی بر علیه حکومت بیان میکنن الا منتا چون حکم یکی ایشون میگه بر میگرده به همه بله این یکیست بعد یک نکسید دیگه هم هر بعد ان الله اینجا حال لا حالا اینجا بله من توضیح بدم این در این مثال هایی که در این مسئله زدم خوب حالا بن بزن آخرش چون یه مد مثالم زدم انت اربع مرات به نیت تکراز و قالب رابع انت طالق الله تا این به اول به خبری برمیگرده یا به همه هم را بحث پس این شرط چهارم رو که ایشون فرمودن این جزء تفصیلیه که دیر به ما هم دادن و خلاصه این شرط چهارم که اگر معمول یا به تعبیر گفت یا به تعبیرشون جمل منقطع بود و منقطع نبود اون این شرط میکنه پنجم بینم ان یکون بین الجمل تناسب فه این لم یکن بینها تناسبون لایست خلعت فضلن ان ارادت البعض اول کل بله این این یکوی بیدن جمل تناسب به اصطلاح تناسبون از کردن این در دردار مهمی هم تو باقرابه داره که بحث بیان هم تو بحث بلاقت داره اینا ادعاش شده اینه که باید این رو تناسب باشه از این جمله خبریه باشه از اون جمله خبریه اگر اینشایی است، از اون بر اینشایی اینشایی بر خبریه نمیشه لذای هم معتقدم که اگر تناسبی بین جمله نبود وقت به خصوص اخیره برمیگرده مثالش هم باز همون آیه قرص خود دفت بکنیم تو در آیه قرص اینجوره فجل دو هم سماهین جلده این بسیقه یه ولا تقبلو لهم شهادتاً اولا نمیسته لیه و اولای که فاسقون این جمله اثمیه هست چون این جمله اثمیه با اون دو جمله فرمو میکنه پس به خصوص اخیره برمیگرده اگر بود و فرسقو هم اله لبین طاقه هم این بحث مزهر میشد اما شبه و اولای که همون نه و یک شرگ هم بله همین آیه را بله شرط ششم رو باز ان او دو به لا کل بنفرادها یعنی به عبارت دیگه یک قرینه خارجی نداشوشیم که به یا بعد یا بر نمیگرده این معنی کلام همین معنی رو نشوشیم نه و باز همین آیه قص رو مثال زده این آیه قص رو مثال بده یا اون آیه دیگه فتحرير رقبه المؤمنه و دیت المسلمه الی اهله الا ان یصدقوا این الا ان یصدقور به دیه دره نه به تحریر رقبه این به خاطر اینکه به هر کدوم به تنهایی میتونه مراجعه کنه چون اون فریضه و هم ثوابین جرده این حق آدمیه این با توبه ساقط نمیشه یه منظرم واسه ایشان شرح داده. حالا من عرض بعد میاد میام همینجا عرض بکنم <تصفيق> یه مقداری این بندس رو دبینید من در روز اول هم که کلمات مرموم استاد بخوندیم توضیح دادم که ما این بحث رو که با بحث رو اصولیست مفهمه کنیم یه مقداری شکلی باید در نظر این کار برده هیش رو نگاه بکنیم خب این مثال که زد عطف به باشه به خواب باشه به سهمه باشه به بل باشه به لا باشه <تصفيق> ما الان به در قرآن نداریم از ای این به بابا نداری نداریم دقیقه میکنیم لذاب ذهن یا که این ها اصلا اصولا این خالی از مطلب باشد اون وقت خوب دقت بکنه آیا اهل سنت، چون میدونستن که این مشکل داره یعنی به اصلاح ما مورد در روایات نداریم در حدل نداریم بیشترین بخش این مسئله رو زدن به احواق طلاق این نقطه را ها تنازم. ما این کار رو این یک نقطهی ای ترد کردن کرارن و مرارن ما با اون درافت های بحث که در میان ارحاظ اهل سنت هست با شیعه تشریف ببین یعنی این همه تفصیل این ها تو این مسئله دادن فرو برای مسئله او اصطلاح فروعی رو برای این مسئله, بر مسئله تصبای کردن این تفصیل و فروعی که در مسئله داده شد یک مقدارش بر میگرده به مبانی اونها در طلاق مثل در همین جا مثل این تو گفت انت طالبان طلقه و طلقه اللا طلقه طالبان آن... طلقه و طلقه اللا طلقه آنها این بحثی کردنه اینه اللا به هر دون میخوره یا به خصوص اشگری میخوره درسته؟ دیگه من دیگه نمیخواد بکنم یه مقدار زیادی از فرو ایتی که خب آمده من دیگه خیلی مختصر میکنم یه مقدار زیادی از فرو ایتی دنی که یه کردن این مسئله اصولی رو زیربنای فقر قرار بدن دوست که مکنی زیربنای فقر نه در آیات قرآن آنچون آیات قرآن این قدم نه در روایات این آمدن زیربنای فقر قرار دادن چی فروع طلا خیلی داره فروع زیادی روی ایشون در اونجا ذکر میکنه که مثلا چطوریه بعد مثلا میگه و خرج منها بردار بردار المنصوص لشافی انها ستال لفت در لنه هو یوم کن او دلستسنا الائی ماینی فیض خود و یفتر فرقتان. بعد بعدیشون یک فرقه در مسئله که اینا دارن مسئله به اصطلاح طلاقه اصولا این مسئله طلاق ها ما به هیچ وجه متعرض نشدن در از مثال علماء ما متعرض به این بحث کلا نشدند طلقه الا طلقه چرا؟ چون الفاظ طلاق ها سریع باشه و طلاق دوم و سوم هم که شما واقع نمیشه لذا این بحثگاه یا این یک طلاقه یا دو طلاقه یا سه طلاقه این چیجوری معنا بکنیم این خاینه های پیش ما موضوع نداره دقت می اصلا این مقدار فروعی ای رو که اینها مطرح کردن روشن اصلا این مقدار فرو پیش ما اصلا کار نداره داره این یک و ممکن است بگیم چون این یک مسئله نیست که خیلی ظهور و عرفی داشته باشه شاید به نیت شخص سر بکنه و باید لفظ لفظ سریعی باشه پس یک موردی که آیان یعنی اینها وردن چون من روزه از کردم که ما اینقدر کار توی عدل نداریم که این تفریعات زیاد روزه کردن یه مقدار تفریعات رو امداختن به باب تلا که اگر ما راجعه بخوام بخونم, بخونم وقتی شما گرفته میشه و نداره. هم ندارم. این تفریعات تلا کلن پی شما ثابته کلن ثابته نه چون طلاق شما باید یکی باشه و الفاظ معینی هم داره و ابهام هم باید باشه صریح باشه روشن باشه با این الفاظه که اینا میگن دوبون مثلی که هست بله دوبون مطلبی که اینا تفریح آوردن تفریحاتی در باب احرام یه مقدار از این تفریعاتی که انسانم در باب اقراب رو یک یه مقدارش در تفریعاتی ما هم آمده یه مقدارش که این تف... تف... تف... تفریعات باب اقراب یک مقدارش برگشته به مسئله لغت و نهرم هست به مناسبت هایی تو که سابه محلی هم آمده باب اولش هم داره به مناسبت در اونجا هم آمده و دیگه که این تفریعات نده شده یعنی یک تفریع نیست از به احتمال بسیار قوی دیگه زیاده از این تفریعات در اصل از دستگاه قضایی بوده پیش قاضی می رفتنیم بوده اینجور گفته اونجور اقرار کرده اینجور گفته چی قبول بکنیم و بعد از دستگاه قضایی به تفریعات در سفر تفریعی اهدهان مرفته سنی ها در بخش پر تفریعی متعبس شدن مطرونه اولیه ما نیامده خوب دخلق بکن خیلی از این تطریعات با باب اقرار هست مثلا در کتاب شیخ صدوق نیامده در کتاب مقنع نیامده نهایی شیخ توسی نیامده مراسم و سلال اولین باری که این تطریعه اینجوری آمده در کتاب مخصوص شیخ توصیه از مخصوص شیخ توسیه هم یک مقداری از روح مهمش به شرایه یا از این هم بین ما منتشر بین ما اینه چون ما دستگاه قضایی و مستقلی نداشتیم افتلاب این کفری نبود چون میبردن پیش قاضی. های اینجور گفته مثلا نگاه بکنی اگه لهو درهمان حالا کسی اینجور اقرار کرد گف لهو درهمان و درهمان الا درهمان چند درهم بازش لهو علی درهمان و درهمان الا درهمان ایش ایش باید. ایشون میگه لازم ثلاثتون سه درهم باز بده الاشتاد به دهنه اولی این بود که درهمون همان درهم هم این میگه نه مثالهای دیگه هم داره من دیگه هر هست میکنم از اصول خارج بشه یه مقدار مثالهای دیگه هم داره که آیا مراد چیه اینجا با چیکار کار بکنیم دقت میکنیم لنهو استخنا درهم هم من درهم قال و رافعی بله نه. بله قال و رافی باز اینجا غیر اون ملحظه او یک بحث دیگری هم داره. و اون بحث اینه که بگرزون اگر گفت لهو دیر همان و دیر همان اصولا دو تا اقراره یا یکی اقراره یعنی اقراره به سرات در اینا ما نه گفالتشه هراره خوب دقت کنید خاص یک بحث اصولی هست میگه یک استثاره بیان داره اگر گفت لهو در و در دو تریخه داره یکی بیان یکی در اون وقت در همان الا در همان این بوده دقیقاً یک یعنی بحث دیگه داشتن این کلام رو ما چطور معنا بدم لهو علی در و در یعنی لهو علیه طراز دراهمه با هم دیگه هم بشه؟ عرف اینجور میفهمه؟ الا درهم همه مقدر رو سوال درهم داده رو درهم یا این دو تا اقرابه یک اقراب لبو علیه من این نکات فنی چون اهل سننم توی این مسئله خیلی صحبت کردن انصافا در این فقه تفریعی زیاد برد اون نکته فنیش رو دقت بکنی و این نکته فنی هم استظهار عرفیست کاریو و از این کلام لغو علی درهمان و درهمان این در مقصد دو تا اقرار لغو علی درهمان لغو علی درهمان این دو تا جمعه است. یا نه این یک اقرار در سه درهم این لغو علی سلاز درهم یکی میعذاری هم این آین اهل سنت برای فروع این مسئله مسئله استثناء متعقب در جمعه المتعاطفه روی فروع به اصطلاح اقرار وارد شدن البته در خروع اقرار ما از کردیم حق در مقام این است که باید کلام به حد ظهور و عرفی برسه با این اعراب های نحوی زمان و, و ها اگر به حد زهور و عرفی رسید محصوب ثابت کلام مجمن میشه اثبات نمیشه بعد ایشون از ثابت ام یکون المعمول واحده اون معمول یکی باشه این مرادش از معمول در اینجا به اصطلاح ظاهرا بله ان يكون المعمول واحدا که بوی تعالی و الذين امنوا المستظهر مرادش از معمول اون به اصطلاح عامل در الا ظاهر معمولی که اینجا ظاهرش مرادش اینه که موضوع یکیه بله مرادش از معمول یکیه چون مثل که در همین در وقت موضوع مثال سازدن بله ایشون به اصطلاح یکی گرفتن معمول و ظاهرم مرادش یکی باشه اصطلاح معمول یعنی آمن رو باید مثلا فجر دو اینها بگیریم معمول هم که درش عمل کردن الا الا منتاب اون بگیریم لیکن ظاهرم مرادش اینه ظاهرا این باشه و لذا گفته ابن مالک اتفق العلماء الا تعلق شرط بالجمی فی نه لا تس حد زیدن ولا تزن ولا تکلم الا تخار و منزل بعد بحث مفصلی از این عبارتش اینه که شرط و استثناش شرح میکنه از این عبارت زیدش باز شرط هشتم ان ته دل آمل بله که عامل در اونها یکی باشه اونه که درش عمل کرده مثل اکسل فقرار فقرار لباس کنون ظاهرم موردش اینجا درده آمن همون اصطلاعی که من دفعی دوم گفتم ولی لباسشی که میبه داره یعنی چون هلا به اصطلاع معمول آمنش اکسل و یا اون فعل دیگه بعد نمشه از تا سه ان یکون فل جمع چند تا جمعه باشه اگر مفردات باشه آدل جمعی مثل اکران زیدم و امران و بکران الا من هم این هم به همه میگرده اگر به اصطلاح اینجا به اصطلاح ایشون هسته جمل تحبیل کرده و که در اینجا حکم هم یکیه مسئله دهم هم مسئله دهم میشهرد ده هم ان یکون الاستثناء و کرده اما اگر به اصطلاح استثناء مقدم باشه مثلا میگه لاوتش که من فصل ما من و مسائلی که میگیم بعد میگه عتبه الکلما و فلان بکرو بعد بیاره ایشون میگه که بله بعد بله نمیگه اینجا باید به اصطلاح بردی نمیگرده به همه محل کلامه اون که محل قبوله بود متأخر باشه مثلا نوشته که بعضیابین قبول نکردن دو اش اختلاف خب این خلاصه بحثی بود که ما حالا مخواهیم جه جمع ایک بکنی جمعوری بکنیم جمعوری بکنیم جمعوری که مبارسی که حالا مطرح شده ارز کردیم که اولا این آیان تونجهی که عباراتشون حاکیز بیشتر بحث رو در ظهور خرفی گرفتن و شما ما ارز کردیم یک ظهور خرفی آن داریم یک ظهور قانونی داریم یعنی ما در این بحث باید هم ظهور قانونی حساب بخونیم هم ظهور و عرفی و ظهور قانونی زیر بنا ظهور و عرفیه این یک نقطه اینا البته بحث هاش رو بیشتر رو ظهور و عرفی ده. در ظهور و عرفی اون که در مجموعه کلمات علما چه زیدی، چه سنی, سنی و شیعه، چه قدی و چه جدیده ادهی از امور ملاحظه شده یک ملاحظه شده به لحاظ به اصابه از مفردات مثلا واق باشه، فا باشه، سنه باشه، چه این باشه یا باشم یا نبا این به نظام واق و فا و بله و اینجور چیزا و ها ها هزا مرموم آزی قدس الله نفسه که عباره شما اجمارم خوندیم اشون فرق بذاشتن که ما عداتی که میاریم اسم باشه یا حرف باشه مثلا سوا اسم اکمال علماء و فلان سرال فسا یه به اسم میاریم یه به حرف میاریم ببینید طب یک بحث در این عبارات ظهور عرفی اداتی است که به کار برده میشه اسم باشه حرف باشه کدوم یکی از این اسم ها بشه نکته دومی که به کار برده شده و حل این نکته دقت بکن تاثیر این نکته تا یک حدی تو نتیجه گیری روشنه چرا چون هر حرفی داره یه خصوصیتیه هر اسم باشه حرف باشه داره یه خصوصیتیه یعنی مخواد بگه این خصوصیتی که در حرف یا در اسم هست تأثیر میگذاره که اون شرط یا استثناء به همه برگرده یا به خصوص اخریه و انصافا این مقدر اجمالا درست خب حروف وارده یه میکنن این جای بختش نیست اسم با حرف اس فرم میکنن حرف با حرف فرم میکنن لکن از که این باید بیگه حدی که قابل اعتماد در ظهور قانونی باشه ولی اجمالاً نا با هم فرق و باید از ناردش جدا بود. بحث دوم می که باز در این جرته که آیا غروف عاصف باشن یا نباشند؟ بحث دو می بومی که باز در این جرته آیا این جمعه رو که ما داریم چونه معصره درم که این سن خیدومن فسیل میکنه همه از یک دستن مثلا همه جمعه خبریه همه جمله اینشایی هم یا نه یک دستن بیستن فرق میکنه این هم گوده اشماره نقطه به چهارم چهارون نقطه بعدی که در این غروف و در این جمل مطرح میشه کیفیت قرار گرفتنشونه که استثنان مقدم باشه یا نباشه نماشه هستن آور این اینا یک مردار بحثاشون در حقیقت برگشتش یک نوع زهورات و عرفیست اینه بخش از بحث روشن شد بخش زهوم از بحث راجع میشه به زهورات قانونی که خود این ظهور قانونی اینطور اختضا میکنه. مثلا مرگوم نانی میفونه اگر یکی باشه اگر پک و موضوع و محمول دوتا باشه به اکیری برمیگرده اگر یکی باشه به همون یکی برمیگرد به, برم، به همه برمیگرد شبیه این هم برموهای کویی یعنی به عبارت دیگر ما اون چیزی که عامل مهمه در این قسمته ببینیم استثناء از چی امکان شده اگر حرف استثناء باشه یا شهر باشه او رو ملاحظه بکنیم خصوصیاتی که در او حرف ملاحظه من عرض کردم یک نقطهی رواره من عرض بکنم این مال بخصی سابق بود الان بحث خارانی توی حضورات و عرفی خوب دقت بکنید. ما اگر در زبان عرب ادواتی داشتیم برای استثنان که استثنانی موضوع رو از حکم جدا میکرد یه مقدار بحث آرام تر بود یعنی بهتر پیشیگر ما مشکلی که در زبان عرب داریم زبان فارسی هم فهم میکنه عدات استثنان چه برای حکم باشه چه برای موضوع یک نواف میاد؟ الان مگر اینکه که مثلا فهم خاصی بشه از کار این مرموم نجموله مرزی اینه که استثنان همیشه به موضوع میخوره. چرا اگر جا الحوم الا زیده این الا الحومه این اگر بخواییم به فارسی ترجمه کنیم این حشیره مگر زید آمده اینجوری مناب کنیم این حشیره که اگر در زبان فارسی هم مهم فرق روی با تغییر هیئت پس و شده بیشتر میگه جا خوم الا زیدن معنیش اینیست که قوم آمد زیدن و میگه تناقض پیدا میکنه لذا به ذهن ایشان را همیشه به موضوع برمیگرده اگر چین مطلی ثابت بشه مثلا موضوع هم یکی باشه خیلی راحت این اما متاسفانه چین مطلی ثابت نیست در لغت روشن نیست بلکه ظاهرش این که استثناء به حکم برمیگرده اینطور تا حال به کلام محتمل به فلسفه خیلی میخوان استدلال بکنن ظاهر به حکم من هست پس بنابراین این راجع به ظهور عرفی بود حالا یادم بود استدلال کردیم و اما ضرورت قانونی با این مشکل روبرو است حالا خیلی وقتو داشت صلی الله